ایسا در وسط کلیسا هاست عزیزان به کلاس دیگه ای از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین ما در این جلسه به بررسی کتاب مکاشف ادامه میدیم و در اونجا میبینیم که ایسا پیامی برای کلیسا خودش داره خوشحالیم که تصمیم گرفتی در این جلسه به ما بپیوندین در این درس وظیفه سبخشی رو که خدا به یوحنا رسول داده میبینیم امیدواریم ضمن اینکه معلممون امروز ما رو هدایت میکنه خدا قلب و ذهن های ما رو باز کنه می ازتون دعوت کنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و به آخرین کتاب از کتاب مقدس یعنی مکاشفه ایسای مسیح نگاه کنید روی کرد ما به کتاب مکاشفه ایسای مسیح این هست ما معتقدیم آخرین کتاب از کتاب مکاشفه پیامی رمزی از جانب خدا به قوم خدا هست و برای درک اون پیام ما به کلیدهای رمزگوشا نیاز داریم. اولین کلیدی که باید داشته باشیم و در واقع میشه گفت شاه کلید هم هست، روح القدس. دومین کلیدی نه که بدونیم این نمادهایی که در کتاب مکاشفه آمدند، نمادهایی کتاب مقدسیه. اگر شما در جای دیگری از کتاب مقدس که این نشانه ها آمده اونها رو ببینید و معنی اونها رو درک کنید، شانس بیشتری برای درک معنی این نمادها در کتاب مکاشفه با کمک روح القدس خواهید یافت. سومین کلیدی که به شما کمک میکنه تا رمز این پیام رمزی را باز کنید مربوط به خلاصه کتاب مکاشفه یا رعوسه کلی هست. 22 باب در کتاب مکاشفه وجود داره و این بسیار مهمه که بدونیم این باب ها چطور سازماندهی شدن و این کتاب چگونه تدوین شده. من در ابتدای شروع این دوره به شما گفتم که یکی از اهداف من از تعلیم این درس ها این هست که به شما نشون بدم کتاب‌های کتاب مقدس چگونه تدوین شدن. و همینطور گفتم یکی از اهداف دیگر از اهداف من اینه که خلاصه کلی از این کتاب‌های کتاب مقدس به شما ارائه کنم. هدف دیگر این بود که به حقیقت اصلی هر کدام از کتاب‌های کتاب مقدس تمرکز کنیم. و بلاخره هدف نهایی و تاکید اصلی این بود که شما کاربردی عملی و شخصی از این حقایق کتاب مقدسی رو در زندگی خودتون داشته باشید. اینجا وقتی در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم، میخوام به تمامی اون اهداف دست پیدا کنید. بیشتر مبشران به چیزی معتقدن که محققین به اون آیندنگری به وسیله تفسیر مکاشفه میگن. من شخصاً معتقدم که تفسیر آیندنگری از تنها کتاب نبوتی عهد جدید کتاب مکاشفه در باب یک آیه نوزده است. اونجا که یوحناه رسول در جزیره پاتموس تجربه ای داشت که به او تعلیم داده شد. آیه نوزده میگه، پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستن و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. باب یک آیه نوزده به ما خلاصه و نحوه ساماندهی کتاب مکاشفه رو نشون میده. به یوحنا گفته شده سه چیز رو یادداشت کنه و او این کار رو کرده. به او گفته شده پس بنویس چیزهایی را که دیدی این اشاره به تجربیاتی داره که یوحنا داشته که در باب اول مکاشفه آمده یوحنا در جزیره پاتموس تجربه روحانی انگیزی داشته تمامی مردان بزرگ خدا تجربیات خاص خودشون را داشتند که ما میتونیم به اونها تجربیات روحانی بگیم یعقوب با یک فرشته کشتی گرفت اشعیا در معبد در حال نیایش بود که چیزی مثل زمین لرزه اتفاق افتاد تمامی معبد متلاشی شد او میگه که پادشاه رو بر بالای معبد دیده اشعیا خداوند رو دید این مردان تجربیات روحانی ذهنی خودشون رو داشتند اینجا در باب اول مکاشفه ما تجربه یوهنا رو میخونیم خونیم در جزیره پاتموس به خاطر ایمانش در تبعید بود در روز خداوند که اولین روز هفته بود روح خداوند او رو دربر گرفت او گفته و در روز خداوند در روح شدم در روح شدن اصطلاحی در زبان یونانی هست که به معنی تحت کنترل روح در آمدن هست. یوحنا تحت کنترل روح مکاشفه ایسای مسیح رو دریافت کرد. اون تجربه یوحنا اساس کتاب مکاشفه هست. به این ترتیب این کتاب ثبت مکاشفه ایسای مسیح است که یوهنای رسول در جزیره پاتموس دریافت کرد. به یوحنا گفته شد که این مکاشفه رو یادداشت کنه و اون مکاشفه نوشته شده خطاب به هفت کلیسایی هست که در آسیای صغیر آن زمان وجود داشته. در اولین باب از مکاشفه وقتی که یوحنا چیزهایی رو که دیده می نویسه او داره تجربهش رو با ما درمیون میذاره. او میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیرهی به نام پاتموس مقیم بودم آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم که به من گفت آنچه را که میبینی در کتابی بنویس و به این هفت کلیسا یعنی کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرگاموس، تیاتیرا، سارد، فیلادلفیا و لاودیکیه بفرست برگشتم تا ببینم کیست که با من سخم میگوید. وقتی برگشتم هفت چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها، کسی شبیه انسان بود که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینهش بود و موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پاهایش مثل برنجی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار او در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون می و چهره مانند خورشید نیم روز می درخشی وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس من اول و آخر هستم من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم آن چرا را میبینی بنویست آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. مفهوم و مقصود آن هفت ستاره ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا میباشند کلمه یونانی که در آیه آخر فرشتگان ترجمه شده میتونه شبانان هم ترجمه بشه. این بررسی اجمالی مکاشفه هست. بنابراین ما وقت نخواهیم داشت که وارد جزئیات مکاشفه‌ای بشیم که یوحنا تجربه کرده. وقتی این نویسندگان کتاب مقدس از تجربیات روحانی خودشون با خدا با ما صحبت میکنن، بر جزئیات تجربیاتشون تاکید نمیکنن، بلکه بیشتر بر نتایج تجربیاتشون تمرکز میکنن. بنابراین در وقت کوتاهی که برای بررسی کتاب مکاشفه داریم، قصد دارم فقط بر نتایج تجربیات یوحنا تمرکز کنیم، نه بر جزئیات. افعالی رو که یوحنا در داستان تجربه خودش به کار میبره ملاحظه کنید؟ او میگه من در جزیره پاتموس بودم، من در روح شدم، صدای شیپور بلندی رو از پشت سر شنیدم، برگشتم تا صدایی را که با من صحبت میکرد ببینم. آیا توازنی بین تجربیات یوحنا با تجربیاتی که موساداش میبینید؟ موسی یک بوته مشتعل دید که تمام نمیشد و او با خود گفت نزدیک بروم و این چیز عجیب را ببینم که چرا بوته نمیسوزد وقتی خداوند دید که او برگشت تا ببیند بعد از اون خداوند خودش را بر موسی آشکار کرد و با او رو در رو سخن گفت همونطور که دو نفر انسان با هم گفتگو گو میکنند نمادی که در اونجا به نظر میرسه پیش نیاز داشتن تجربه عمیق با خدا هست اینه که برگردید. در متا هفت هفت گفته شده بخواهید به شما داده خواهد شد. بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست میآورد این خواستنی ارادی هست و هر که بجوید پیدا میکند. این هم جستجوی ارادی هست و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. دری که به حضور الهی خدا هست به رویشان گشوده میشه. یوحنا در یک جزیره بود. ما نمیدونیم او چه مدت در اونجا بوده. اما او برگشت همانطور که موسا در بیابان برگشت. او برگشت تا صدایی رو که با او حرف می زد ببینه و وقتی او برگشت صدا با او صحبت کرد. افعالی رو که یوهنا برای شرح تجربیاتش به ما به کار میبره ملاحظه کنید وقتی برگشت او میگه وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم هر کسی که خدا رو میبینه مهم نیست که او با یک فرشته کشتی میگیره یا یک گردباد یا فروریختن ریختن معبد هست یا جایی که زلزله میشه مهم نیست که جزئیات چی هستند. وقتی اونها خدا رو میبینند نمیتونند کلماتی پیدا کنند که شکوه و عظمت و حیبت او رو بیان کنند در این حال کلماتی پیدا کنند که احساس تقصیر و گناهکاری خودشون رو در اون لحظه بیان کنند این احساسی بود که اشعیا هم از خدا داشت وقتی که میشنویم اشعیا میگه وای بر من که هلاک شده ام زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است این احساسی هست که اشعیا در موقع دیدن خداوند در مورد خودش داشته یوحنا هم از همان الگو تبعیت میکنه وقتی یوحنا مسیح رو دید مسیح ابدی رو بر خاک افتاد چنان که گویی مرده بود عیسی به مردم گفته بیایید و بمیرید معنیش اینه که در تمامی نخشه های خودتون بمیرید در تمامی اراده خودتون بمیرید در تمامی خواسته های خودتون بمیرید بیایید و در تمامی اون چیزها بمیرید و برای یک چیز زندگی کنید برای من زندگی کنید پس یوحنا مثل مرده به خاک میافته. بعد عیسی دستش رو روی او میذاره و میگه نه ترس یوحنا من ابتدا هستم من ابتدا و انتها هستم به ما گفته شده که عیسی رو در اولویت قرار بدیم روح القدس به ما میگه که هیچ کس نمیتونه بگه عیسی خداوند است مگر اینکه روح خدا با او باشه روح القدس باید کاری در زندگی کسی بکنه و در نتیجه اون کار او در زندگی اون شخص اول میشه عیسی به نیقودیموس گفت اگر کسی تولد دوباره داشته باشه ملکوت خدا رو خواهد دید واقعیت اینه که خدا شاه هست. شاه شاهان و رب العرباب. او میگه نیقودیموس وقتی کسی دوباره متولد میشه وارد رابطه ای با خدا میشه جایی که خدا شاه شاهان و رب الارباب هست. او وارد پادشاهی خدا میشه به نظر میرسه که این اتفاق به چنان روشی زیبا میفته که مسیح قیام کرده مسیح ابدی دستش رو بر روی یوحنا میذاره و میگه من اول هستم نه ترس یوهننا. من اولین هستم بسیاری معتقدند که یه رسول وقتی داشت تجربهش رو مینوشت اولین قسمت از معموریتش رو به پایان می برد به یوحنا گفته شد چیزهایی رو که دید بنویس. بعد به او تعلیم داده شد که چیزهایی که هستن بنویس. بسیاری از محققین معتقدند که این به بابهای دو و سه اشاره میکنه. باب یک مربوط به چیزهایی هست که یوحنا دید. یا مربوط به تجربه خودش هست. بابهای دو و سه مربوط به قسمت دوم ماموریت او هستند که همون چیزهایی بودند که وجود داشتند. چیزهایی که در هفت کلیسا وجود داشت. کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، سارتس، فیلادلفیه و لاودیکیه کلیساهایی حقیقی بودند که در اون دوره وجود داشتند. نامه به هفت کلیسا در بابهای دو و سه مکاشفه هستند. بسیاری از مردم معتقدند که یوحنا قسمت دوم معموریتش رو در بابهای دو و سه با نوشتن نامه به هفت کلیسا تموم کرده. نامه به هفت کلیسا که در آسیای صغیر بودند باید همراه با دعا مطالعه بشه. به صورت متعهدانه و شخصی به کار برده بشه همونطور که کولوسیان، افسوسیان، فیلیپیان نامه یعقوب و اول و دوم پتروس را مطالعه می کردیم چون که اینها نامه هستند که به کلیسه موجود در آن دوره نوشته شدند. به هر حال نویسنده این کتاب تنها شخص یوحنا نبود به لحاظ خیلی خاص نویسنده کتاب مکاشفه خود ایسای مسیح زنده است. تقریبا مثل این هست که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده، به آسمان صعود کرده و بعد پیغامی به کلیسای خودش میفرسته. مسیح قیام کرده با یوحنا صحبت میکنه و پیغامش رو توسط یوحنا به اون کلیساها میده. این نامه‌ها میتونن بسیار آموزنده باشن، به شرطی که همونطور که به دیگر نامه‌ها در عهد جدید پرداختیم، به اینها نیز بپردازیم. اونها معانی بسیار خاص و کاربردی دارند چون که اونها مستقیما از مسیح قیام کرده به یوحنا رسیده و توسط یوحنا به کلیساها بسیاری از اونها با گفتن این خاتمه پیدا میکنه آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید یادتونه که در باب یک مکاشفه یوحنا هفت چراغدان طلایی دید مکاشفه او از مسیح این بود که مسیح در بین این چراغدان ها ایستاده بود به یوحنا گفته شد که این چراغدانها کلیساها هستند به او گفته شد کسی که در بین چراغدان ها استاده مسیح است. امروز عیسی مسیح کجا هست؟ یادتونه مردان حکیم در موقع تولد عیسی این سوال رو پرسیدن که او کجا جواب سوال اونها این هست که عیسی مسیح در بین کلیساهای خود هست اگرچه اون کلیساها ها مشکلات بسیار بسیاری دارند مسیح زنده و قیام کرده در بین کلیساهای خودش هست هرگز این رو فراموش نکنید. مهم نیست که کلیسه ها چقدر ضعف دارند عیسی در بین کلیساهای خود هست او برای این کلیساها پیغامی داره اگر این نامه ها رو بخونید میتونید کاربرد عملی برای کلیسای خودتون و برای خودتون به عنوان عضوی از اون کلیسا از طریق این پیغام ها پیدا کنید نامه به کلیسای افسوس میگه شما دیگه مثل سابق محبت ندارید چه اتفاقی برای محبت شما افتاده این منو شیفته خودش میکنه چونکه که ناظر اون کلیسا بود وقتی پولس برای فیلیپیان نوشت اینطور گفت تیموتاوس تنها کسی است که احساسات مرا درک میکند و واقعا در فکر شماست دیگران همه به فکر خود هستند نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح شما تیموتائوس رو خوب میشناسید و میدونید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است و حالا آیا جالب نبود ای که به کلیسایی که تیم شبانیش می کرد این نصیحت رو داشت؟ اونجا میگه، اما این شکایت را از تو دارم اشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای؟ به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای؟ توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت رو از جایش بر می دارم. نه نجات شما رو بلکه شهادت شما رو و خدمت شما رو میگیرم توبه کنید و به رابطه قبلی خودتون برگردید به محبت قبلیتون نسبت به من و بعد به رابطه محبت آمیزتان با مردم در کلیسا برگردید من فکر میکنم که این چالش حیرت انگیزیه اگر شما احساس میکنید کسی هستید که خداوند توسط شما مردم رو محبت میکنه پس فراموش نکنید که میتونید تجربه وسیده مسیح بودن رو برای محبت به مردم از دست بدی به جز نجاتتون چیزی نیست که نتونید از دست بدی در بسیاری از این نامه ها، ما این نصیحت رو میبینیم توبه کن اینها به وضوح نامه هستند که برای ایمانداران نوشته شده آیا ایمانداران نیاز دارند که توبه بکنن؟ البته که نیاز دارند. ما فقط یک بار توبه نمی کنیم. لازمه که مرتبا توبه بکنیم نیاز به توبه دائمی در زندگی ایمانداران یکی از دلایلی هست که عیسی مسیح به مردم فرمان داد که وقتی یک جا جمع می میشوند اشای ربانی رو به جا بیارند مهم نیست که ما چه فرم پرستشی می کنیم و یا چه اسمی داریم یکی از تعالیم مربوط به ملاحظه خودمون در پرستش خداوند اینه که دائما خودمون را آزمایش کنیم و از گناهان آگاهانه ای که مانع ارتباط ما با خداوند میشه توبه کنیم این نامه ها به هفت کلیسا رو در باب های دوم و سوم مکاشفه بخونید و وقتی حقایقی یافتید که به موضوعی شخصی در زندگی روحانی شما ربط داره مثل توبه بعد از اون به خلوت دعایی خودتون برید و از هر گناه شناخته شده ای در زندگیتون توبه کنید. بعضی از محققین معتقدند که این هفت کلیسا علاوه بر اینکه کلیساهای واقعی موجود در اون زمان بودن مروری بر تاریخ کلیسا هم محسوب میشن. وقتی این ها رو می‌خونید ببینید که آیا با اون محققین موافقید یا نه. مکاشفه بسیار جذاب و عمیق است. من گمان نمی‌کنم هرگز از عمق حقایقی که در کتاب مکاشفه پیدا میشه خسته بشید. یادتون باشه که غالباً این یا اون نیست. اکثر مواقع می‌تونه هر دو باشه. وقتی هفت ها رو مطالعه می‌کنید شاید موافق باشید که از یک نظر اونها با نامها. و خصوصیاتشون میتونن خلاصه ای از تاریخ کلیسا رو به ما ارائه بدن کسانی که بر این نظریه معتقد هستند میگن نامه به لاودیکیه نشاندهنده کلیساهای امروزی هست کلیساهای امروزی ولرم هستند اونقدر ثروتمندند که فکر میکنن به چیزی نیاز ندارند و نمیدونند که به لحاظ روحانی درمانده و فقیر و اوریان هستن نصیحت به کلیساهای امروزی این هست که شما باید ردای سفید بپوشید شما باید توبه کنید و با آتش تنبیه پاک بشید تا بتونید طلای خالص بشید این جایی هست که ما به متن بسیار آشنایی در کتاب مقدس می رسیم که میگه همه ی کسانی را که دوست می دارم، سرزنش می کنم و تأدیب می نمایم پس غیور باش و توبه کن اینجا می شنویم که مسیح قیام کرده خطاب به کلیسای خودش در لاودیکیه میگه. نگاه کنید، من شما رو اونقدر دوست دارم که نمیخوام در زندگی خودتون رابطه ای ولرم با من داشته باشید. بنابراین من در زندگی شما را میکوبم و اون کوبیدن تنبیه است. مشکلاتی هست که شما نمیتونید حل کنید. این رو بفهمید که واقعیت پشت اون توفانها و اون مشکلاتی که شما نمیتونید حل کنید، این هست که من پشت در زندگی شما ایستادم و در را میکوبم، چون که شما رو دوست دارم در زندگیتون رو باز کنید و منو به قلبتون دعوت کنید به مهمترین عرصه زندگیتون و من وارد خواهم شد و با شما دوستی خواهم کرد و شما هم با من دوستی خواهید کرد وقتی یوحنا نامه به هفت کلیسا رو می نویسه، دومین قسمت از ماموریت خودش رو تمام کنه. بسیاری از مردم معتقدند که چالش برانگیزترین قسمت ماموریت یوحنا در باب چهار هست. در باب یک یوحنا چیزهایی رو که میدید نوشته یا تجربه اش رو. در باب های دو و سه یوحنا چیزهایی رو که هستن یا نامه خودش به هفت کلیس رو نوشته. اما با شروع باب چهار یوحنا این بخش از ماموریتش رو شروع میکنه آنچه که بعد از این اتفاق میافتد بنویس. بیشتر قسمت‌های های مکاشفه مربوط به چیزهایی هست که باید در آینده اتفاق بیفتند اگر شما از نظر آینده نگری به این کتاب بپردازید، میبینید که از ابتدای باب چهار آیه یک تا به انتهای کتاب مکاشفه همه چیز مربوط به آینده هست. این خلاصه از مکاشفه یکی از کلیدهایی هست که میتونه در درک کتاب مکاشفه به شما کمک کنه. تمرکز بیشتر بر کلید شماره چهار به شما کمک میکنه که این پیام رمزی رو باز کنید. ما باید ترتیب زمانی باب های 6 تا 19 رو در مکاشفه درک کنیم. باب های 4 و 5 خیلی آسون هستند. اونها به زبان زیبای نشانه ها نوشته شدند که مربوط به پرستشی هست که در آسمان انجام میشه. باب‌های چهار 4 و 5 دو باب مورد علاقه من در کتاب مکاشفه هست. اونها قطعا زیبا هستند و سراسر پر از حقایقی در مورد آسمان. بیشتر از هر جای دیگری در کتاب مقدس در این دو باب از آسمان صحبت شده اما وقتی به باب شش مکاشفه وارد میشیم لحن کتاب عوض میشه و درک این کتاب بسیار بسیار سخت میشه من شبانان زیادی رو میشناسم که وقتی شروع به موعظه در مورد کتاب مکاشفه میکنند، در ابتدا بسیار خوب پیش میرن تجربه یوحنا برای هر کسی برکت بزرگی هست نامه به هفت کلیسا مانند دیگر رسالات الهامی در عهد جدید بسیار راه بردی و قابل استفاده هستند این شبانان دوست دارند که زمان زیادی رو در بابهای دو و سه بکنند. روزی وقتی شروع به موعزه مکاشفه کردم خانمی از من پرسید آیا از باب شش به اونور رو هم موعظه خواهید کرد؟ چون که من خیلی از این نامه به هفت کلیسا خسته شدم وقتی ما به باب شش می رسیم تفسیر کردن این کتاب بسیار سخت هست شبانی رو می که مکاشفه رو تعلیم میداد. و به وسط باب هفت رسید او شروع کرد به خواندن متنی طولانی از روی کتاب و وقتی تمام شد از مردم پرسید آیا میخواید بدونید معنی این چیه؟ همه به او نگاه کردند و گفتند بله و او گفت من کاملا گیت شدم نمیدونم معنی این چیه هست من گمون میکنم این یکی از صادق ترین معلمین مکاشفه بود که من در تمام عمرم دیدم چون که تفسیر این کتاب از باب شش به بعد بسیار سخت هست ما برای تفسیر این قسمت سخت از مکاشفه به کمک روح القدس نیاز داریم. درک ترتیب زمانی باب 6 تا 19 بسیار مهم است. سلسله حوادثی که با آمدن ثانویه مسیح معروف هستند، زمان طولانی رو در بر می‌گیرد. از لحظه شروع اولین رویداد تا به وقوع آخرین رویداد، زمان زیادی سپری میشه. چقدر زمان طول میکشه؟ بستگی به این داره که ما چگونه این وقایه رو تفسیر می کنیم و چگونه اونها را از نظر ترتیب زمانی وقوع کنار هم قرار می دیم. این وقایه باید در یک توالی قرار بگیرند. اما قرار دادن اونها در یک توالی یا ترتیب وقوع بسیار سخت هست. به هر حال مهم نیست که ما اونها رو چگونه کنار هم قرار میدیم. اونها یک سری وقایه هستند که دوره طولانی رو در بر می گیرند. یکی از ترین وقایع در بین تمامی اون وقایع آمدن ثانویه عیسی مسیح هست که شامل یک دوره هفت ساله به نام دوره های عظیم است. عیسی در مباحثات کوه زیتون در متی باب 24 و 25 گفته روزی خواهد رسید که رنج‌های عظیمی خواهد بود. عیسی گفت: زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. زمانهایی در تاریخ کلیسا بوده که بخشای خاصی از بدن مسیح فکر کردند که در رنج عظیمی هستند. اگر شما ایمانداری در کامبوج بودید که بیش از میلیون ها نفر جانشون رو در کشدار های دست جمعی از دست دادن شاید فکر میکردید که رنج عظیم نهایی رو تجربه میکنید اما وقتی عیسی رنج عظیم رو توضیح داده او گفته زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود ما تا کنون چنین رنجی رو تجربه نکردیم شاید فیلم هایی رو دیده باشید که سعی میکنند کنند رنج های اون روزهای سخت رو به تفسیر بکشند اگر فیلم روز بعد رو دیده باشید خواهید فهمید که کشدار جمعی اتمی چه فاجعه ای هست واقعی شبیه اون میتونه تقریبا رنج عظیمی رو که عیسی شرح داده نشون بده بسیاری از محققین معتقدند که رنج عظیم یک دوره هفت ساله رو دربر خواهد گرفت این رنج عظیم چیزی هست که شرح اون رو در باپای شش تا نوزده مکاشفه میبینید. تمام اون باب ها بر یک دوره هفت سال تمرکز دارند که از بین همه اون وقایی که ما میشناسیم آمدن ایسای مسیح کوتاهترین اونها خواهد بود. رنج عظیم در این بخش از مکاشفه به شکل داوری به تصویر کشیده شده. وقتی ما به داوری در باب شش میرسیم ما داوری مهرها رو داریم. مهرهای روی این تومار یکی یکی میشکنه. و هر بار که مهری میشکنه داوری مهیب و وحشتناکی میاد. بعد داوری هفت شیپور رو داریم و این به معنی داوری کامل یا تمام هست. هر بار که یکی از این هفت شیپور نواخته میشه، اونجا داوری هست مهرها در باب شش شکسته میشن و شیپورها در های هشت تا نه نواخته میشن. و بعد در باب شانزده ما جام ها رو میبینیم. این جام ها ریخته میشن. تا جام هست و هر بار یکی از اونها ریخته میشه و باز هم داوری وحشتناکی هست. دلایل متعددی هست که چرا خاندن و درک این بخش از مکاشفه برای اکثر مردم مشکل هست. اون برای خیلی ها مشکل هست چونکه خیلی ترسناکه و ما دوست نداریم که در مورد داوری وحشتناک و حیرت انگیز آینده چیزی بشنویم. ما در بین هر کدوم از این داوری های وحشتناک میبینیم که نوشته شده، وای، وای، وای، اگر شما مشکل افسردگی دارید، این به شما کمکی نخواهد کرد. اگر مشکل افسردگی دارید، من توصیه نمی کنم که این بخش از مکاشفه را بخونید. گمون نکنید که خوندن این بخش از کتاب مقدس به شما شادی خواهد داد. یکی از عواملی که این بخش از مکاشفه را مشکل میکنه، اینه. آیا این سه داوری مورها، شیپورها و جامها سه دوره مجزا از داوری هستند؟ به عنوان داوری متوالی اما جدای هستم؟ یا این دوره ای از داوری هست که رفته رفته شدتش افزایش پیدا میکنه. گفتنش با قاطعیت مشکل هست. من شخصا معتقدم اونها داوری های متوالی هستند و با این داوری های متوالی شدت اون افزایش پیدا میکنه و همه اونها در یک دوره هفت ساله رنج عظیم اتفاق میافته. حالا چنان که گویی به قدر کافی مشکل نبوده، اینجا جایی هست که این بخش از کتاب مقدس واقعا مشکل میشه در بین این سه داوری به ما اطلاعاتی داده شده که آشکارا تفسیری درباره داوری ها هست اما در باب 7 تا 15 و 17 تا 19 وقایه به طور قط ترتیب وقوع زمانی ندارند تصور کنید که شما به یک اپرا رفتید و به اپرا آشنایی ندارید فکرش بکنید به شما یادداشت در مورد برنامه داده شده اما در این یادداشت هیچ ترتیب عملی برای چیزهایی که در هر لحظه روی صحنه خواهید دید نوشته نشده. از این گذشته فرض کنید که همه اون یادداشت‌های برنامه مربوط به بخشی از اپرا باشه. شاید اپرا سه پرده داشته باشه اما یادداشت‌های شما هیچ ترتیب خاصی نداره. شاید شما در یادداشت‌هایی که دارید دنبال چیزهایی مربوط به پرده اول می‌گردید اما می‌بینید که اپرا با چیزهایی که در پرده دوم یا سوم هست شروع میشه آیا فکر میکنید این گیج کننده نخواهد بود وقتی که سعی می کنیم چیزهایی رو که در این باب بین سه داوری داده شده درد کنیم این چیزی هست که ما با اون مواجه هستیم دکتر چارلز رایر این بخش مشکل از کتاب مکاشفه رو این طور به تصویر کشیده تصور کنید که شما در یک مهمانی شام هستید که در اونجا مردی شروع میکنه به گفتن داستانی در مورد تجربه ای که زنش در تعطیلات 7 سال پیش داشته و شما میدونید که خاوم ها مورخین بهتری از آقایون هستن. اون مرد شاید بگه که تعطیلاتشون در هفته دوم جولای بوده. شاید همسرش بگه نه، اون نمیتونست هفته دوم جولای باشه چون که مادرم در هفته دوم جولای پا شکسته بود. شوهر بسیار صبور هست و به گفتن داستان خودش ادامه میده. او به داستان ادامه میده اما زنش که تاریخار خوب به یاد داره، احساس میکنه که تاریخ وقایع طوری که باید درست گفته نمیشن فقط زمانی ما میتونیم داستان رو درک کنیم که هر دوی اینها تمام داستان رو تعریف کنن این چیزی هست که ما در این بخش از مکاشفه میبینیم ما سه داوری داریم که هرسه سه احتمالاً مربوط به رنج عظیم هستند در بین این دوره های داوری ما تفسیرهای اضافی هم داریم اما این تفسیرها از ترتیب زمانی تبعیت نمی‌کنند. حالا دانستن این واقعیت مهم مانع سردرگمی ما خواهد شد و باعث میشه که برداشت کاملتری از آنچه که میخونیم داشته باشیم. اما به همراه این داشتن شاه کلید یا روح القدس این امکان رو برای ما فراهم میکنه که نظریه اصلی این بخش رو بدونیم که همون صداوری هست بعد از اون ما تفسیر رو اضافه کنیم و از روح القدس بخوایم که به ما نشون بده که این تفسیر چگونه با داوری ها ارتباط پیدا می این اینها دلایلی هستند که چرا باب 6 تا اواسط باب 19 مشکل ترین بخش مکاشفه هستند اما این بخش از کتاب مکاشفه اونقدر مشکل نیست که درک اون غیر ممکن باشه دعا میکنم کنم که شاه کلید روح القدس به همراه این دیدگاه که من با شما در میان گذاشتم به شما کمک کنه که این بخش بسیار مشکل از مکاشفه رو درک کنید تا دیدار بعدی شما را به خدا می سپارن. دانش روی عزیز کلام خدا کتاب مکاشفه مملو از وصف های حیرت انگیز و با شکوهی از خدا عیسی مسیحه بسیاری از مسیحیان نمیدونند و نگرانند که آیا از عذاب بزرگی که در این کتاب توصیف شده عبور خواهند کرد یا نه می تونیم بگیم که خدا وعده داده که هرگز ما رو ترک نخواهد کرد. خوشحالیم که این کتاب رو به همراه ما مطالعه می‌کنید و امیدواریم که این بررسی شما رو تشویق کنه که خودتون شخصا مطالعه کنید. در جلسه بعدی که بررسی کتاب مکاشفه و کل کتاب مقدس رو به پایان می‌بریم، با ما همراه باشیم. حالا اون که گوش شنواد داره بشنوه. دعا می‌کنیم که چشمها و قلب شما باز بشه. تا رو که در اون عیسی مسیح شما را فرا خونده بشناسید و قنای میراث شکوه او و قدرت عظیم بیمانند او رو که با قدرت کار میکنند تا ما رو در همه چیزهای روحانی برکت بدن درک کنید